حکایت یکی را از بزرگان ائمه پسری وفات یافت، پرسیدند که بر صندوق گورش چه نویسیم، گفت آیات کتاب مجید را عزت و شرف بیش از آن است که روا باشد بر چنین ها نوشتن که به روزگار سوده گردد و خلایق او گذرند، و سگان بر او شاشند اگر به ضرورت چیزی همی نویسند این دو بیت کفایت است وحکه هرگه که سبزه در بستان به دمیدی چه خوش شدی دل من بگذری دوست تا به وقت بهار سبزه بینی دمیده بر گل من